دارون خودم بسید ما بدبخت بیچاره ها اسبابو درده ساره به آقا جون بگو بیاد درست کنه <تصفيق> حکمان آقا جونت عین خونه شاگه تو پاشتک در باستاده عمر فریده خانه مرتاعت کنه حرفا میزن ایجا آقا جونت خیلی بخص دستا دو زندگی شسته بیشه بیساده این از نسری درده اصن خودم را استریستش میکنه. راضی شدی؟ فریده با روزگار ساخت و... روزگار با فریده ساخت بگو فریده جون. اون که سر زبونت هر رو بگو. چیو؟ <تصفح> همون حرفی که چند قسط تو داره خیس میخوره رو بگو. چی <تصفح> <تصفح> <تصفح> بگم؟ حرفی بزنم میگن زنبواپس میگه زحمت خودشو کم کنه. <تصفح> یادم همه به این رفتن تو روی مثل تو بالا سرش باشه بیرام شمر زلجوشن باشه لاغل بدینن شوهر داره پایستهش عرب نمیزدن نمیگم به حکی در این خونه را زد بگو آره به سر زال حرفم اینه که ابا فکر کن باید جواب کن <تصفح> شما چی شد زن آقا جون شدی؟ <تصفيق> عذیت هم نکن آقا جونت واسه تو آقا جونته واسه من یه مرد غریبه بود که یه روز اونم از شد شوارم نمیگم هیچ حس خوبی نداشتا هنر زن به اینه که یه دونه حسد شوارشو بکنه صد تا, تا عیبه شو بکنی یکی وقتی سال از عمرت گذاشت و بدن چوکی یک کسی خریدارت نیست Çi, rahat tu oğlum mesela, çera de mehreki be delete biçine. ki men az dostunda a başayım. Ne hiç Na, باور كن. yani çi? Yəni kəsə digəyi də dostdur. Boy kəsə də arəmiyən. Deyən hər kəs üç dəfə köşdə ham görünürsən, همه چیز عوض میشه من انتظار داشتم تو همه سفر منتظر رسیدن این لحظه باشیم منطور که به نظر میرسه اصلا خوشحال نشدیم هرچی چی کاری بچه ای تو و نوه ای من برداشم کنم من... با پول من یه زن متجدد شدیم زنی محلات میشی ولی یادی باشه تو همیشه مدین نفروهه تو که نمیخوای من یک عمر با تحقیر زندگی کنم، ما هم که دلت از سنگه یا سر راه تنس نه او وقتی از فرنگ برگستی نگم سرکا تماما پسر کچه پککوچه مادرشونو بهشن با تخواست داریم نه چیز این ها کی چی میگن؟ چی میگم گفتم تحصیل کرده ای قبول کو کوچه, کوچه یوشوا رو نمیکنه حالا که ن عات و دوله چمل که تی میزه که چ تا الااق لقبه میشون نمیکن اومدم پیدا چ تو ده ده؟ بهروز باهاتون حرف دادهه زیر میشه ننه خدا بهمون چشش چش در نمی داشتین جی ببین تو می اون دنیا سر پلی یقمو بگیره از نکن فرزیدی خبرایی میشه به دست سر هم می کنیم نه شب کن خود. خودم بیرم ببا سایو تو ولی بفن تو بگین زودتر بیان باید بریم ایمارستان الان صداشت می من تا دیر وقت مشغول کار بودم نشد به احسان سر بزنم آخر شب که رفتان بیمارستان ببینمش دیدم سیاه و کبود شده پرستارو خبر کردم میخواستم برم دوبار پروفیسور نشونیشو نداشتم حالا شما یه نفس عمیق بکشین انشالله که طوری نشده خیلی ممنون پروفیسور خیلی زحمت کشم چی شد گفتم که نباید نگران باشید بخی بچه سیاه شده بود پروفیسور مورد خاصی ندیدن خوب میشه با امید خدا بفرمایید، بفرمید الان میارنش Ali Alo aga. Ölüçüp öyle tamam ölü. Halish khobe. Müşkeli nedir? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı uçuş geldin. Hayırlı بزن. اون طرف به رویاهام یه کسی چاغو زده وقتی که گفتی بهم به هیچ وقت پیم نگرد انگاری دنیا ما یکی تو آب افت کرد سر که برگردوندی آرزو مو زندگیمو بردی، با یک قلم پشت. خیست لازم نیست این طوری شما که تو خیست میشی اگه قرار بخیست شدن باشه با هم خیست بشیم بهتره بگیریم بگیریم خیست نشیم چوبه تر نره اینجا همسایه های ما خیلی خدا, خدا <تصفيق> اینجا چی کار میکنی؟ کل شهر رو پیتون گشتم آقا کارت چیه؟ باید بریم کلی کار داریم باید بریم هوتل بساردو نادر آقا این وقت شب اینجا با این همه دشمن برو اینجا نباش میخوام برم جایی کار دارم میرم براتون لباس میارم همینجا So we shall صابتون بخیر اینجا چی کار میکنین سوال پرسیدم اینجا چی کار میکنین سرخانی کارتون دارم بفرمایید. اینجا نمیشه. بفرمایید تو ماشین ارز می‌کنه. شوکوجو. یه دستم تو آتیش شه. یه دستم تو تردید. خلا مروفت به به حکایت دلدادگی و عاشقی مرهم زخم زندگی همه اینایی که میگی نه طب فکر نه درد تن رنجور سخن عشق تو عاشق شدی تو چشام نگاه می‌گیرم مشورت تو کابینت کنیزی تو بکنه این چطوره به به مادر رو پسر خلوت کردی منم که نامحرم تو نور چشمی وقتی وارد میشی صدای چخچحت خونه رو روشن میکنه والا این چشه چرا کشتیاش خفخ شده ها پذیرتش نکن داداش میگم آ این یارو کی تازگی ها هیبا مهربون میره و خیلی من شکلیک میزنم نکن نمیم همینطوری گفتم شما حسامو از مرگ قطعی نجات ددیم من پروفسور برای عمل قبول زحمت کرده. بله البته به اعتبار شما بود که ایشون پذیرفتن حسام جان پسر بچه قوی و یه ممنونم اما موضوع صحبتم حسام نیست ازتون میخوام که وسط حرفم نیان ترشده کلام از دستم در نره اینقدر دلم نعاروم و مغزم آشفت چه که سختتونم مقصودم و برسونم شما خانم محترم و تحصیل کرده هستیم منم متوجه سمن و سال وضعیت خودم هستم شاید خواهش من عمل بر پر روی بشه شاید احساس کنین چند باری که باهم خوب برخورد کردین و لبخند تحویلم دادیم دادین باعث شده پامو از من بیشتر ده راست کنیم نگم تا آخره اون مدین خودم می بود حسی که میخوام بگم از همون نگاه اولی که شما را دیدم به سراغم غم بوبارا. راستش این خیلی سعی کردم ازش فرار کنم اما نشد خیلی تلاش کردم خودمو مشغول مشغولیت روزانه کنم مویثر نشد هر طرف نگاه کردم شما رو دیدم و صداتون تو گوشم چرخ کرد خانم مهربانو از همون نگاه اول انکار حس کردم شما رو یه جایی دیدم انگار روان من شما یه جوری از ازل با هم هم جبار بود. من از مکنونت قلبی شما هیچ خبری ندارم ولی حال خودمو خوب می کنم با حرفم ازیتتون کردم؟ نه لیلیو و مجنوب خوندیم؟ یه جایی میگه بر تو گرچه نیست دستم تم نیست چو امید هستم لازم نیست الان جواب بدین من برای شنیدن این قصه ها تو موقعیت خوبی نیستم اجازه بدین من شاید فرصت خوبی برای ابراز علاقه نباشه برای این حرفو تو دلم سنگینه میکرد میدونم شما هنوز درگیر اون مسئله اید شاید بهتر بود بعدم نگفتم اما هر از اینه که به مهرات جواب آره بدم من اصلا این آدمو نمیشنسم راستشو بخواییم خود شمارم خوب نمیشنسم من من فقط حال خودم خوب نمیشنسم من بگم من دلو جون هم به شما از حالات و تو نمیشه که هستد که چنین حالی داره مهرات پسر خوبیه من نه کینه ای از خانوادهش دارم نه از خودش مشکل من مهراد و شخصیت و منشه و ایناش نیستش مسئله من اینه که پدرم حالا روز خوشی نداره بیشتر دوست دارم که درگیر کار و خانواده باشم. میدونین چیه؟ من احاسا تو موقعیت ازدواج نیستم. نمیخوایم فکر کنی؟ مسئله فقط فکر کردن من نیست. مهرات یه پسر بچه عاشق و معمولی نیستش. اون سرش درد میکنه واسهه دردسر. میترسم یه وقت خدا اینا کرده یه بلایی سرتون بیاره از این بابت نگران نباشی هستم. همش احساس میکنم از یه سوراخی گوشه یه شکافی داره نگامون میکنه داره صدامون رو میشنوه همیشه سایش رو بالا سرم حس کردم تو من هستم از چیز نگران نبوشی میخوام بهتون جواب رد بدم انقدر سری جواب ندیم من فقط ازتون میخوام بیشتر فکر کنیم فرصت فرصتهای زیادی برای دوست داشتم ندارم کلمها سخت به زبونم میان واقعا نمیتونم تو درونیمون بهتون منتقل کنم فقط ازتون میخوام خوب فکرتونو بکنم اون وقتی جوابتون رد بود قول میدم تا آخر عمر هیچ خیلی شردی از طرف من متوجه شما نشه من تو عمرم به کسی دل نبستم. از وقتی که یادم یاد دلمشغولیم خانوادم بوده و... کتاب و درس و کارم. نمیدونم. ازتون یه فرصت میخوام که فکر کنم. تو هر زمانی بخواین میتونید فکر کنین. ازتون خواهش میکنم که یه مدت برید. نمیدونم... سه ماه، چهار ماه، شش ماه... تا وقتی که من اینجا مسئله رو و فتق کنم اون وقت که برگشتین معلومه دلتون با منه که این حرفو میزنی من هیچ جا نمیرم هستم خوش آمدید خوش آمدی خوش آمدید خوش آمدید خب از این خان خیلی متأسفیم خوبین کارو با چطوره پرویز خان الحمدلله بد نیست راستش از قولی که به من دادین چند روزی گذشته من با حساب فرمایش شما به تمام خیاتا قول دادم خب واسطه اینم من بودم اونا این بد قولی رو تفریر رو از چند شما که خوب میدونین شما رو چشم من جا دارین تو بار تو بندر گیر کرده حالا کی مسئولش بوده و چه پیش آمده رو نمیدونم گیر کرده تجارت دیگه یه سر برد، یه سر باخت ولی پای سرمایه و پول مردم اعضاب من در میمینه البته من از این بابت نگرانم ولی گمون نمی کنم بتونم کاری انجام بدم اجارتاً کارم شده پیگیری کردم باور کن بیش از این کار دستم بر نمید اسمان جواب مردم رو چی بدم بفنیم میتوام این درنتون شیرین کنی این اعضاب گذاشته میراد خان بعد چه چش نداری مهمون دارم کوری آقا دیگه دیگه نمیشه برو اومدم پرویز خان من یه کار فالی پیش اومده باید برم شما از خودتون پذیرایی کنین یقین داشته باشین اگه کار یادستان بر بیاد کتایی نمی چی هستم مصاحبه کنم حقیقت میگم. تو توی این دور وز جریده پیدا میشه حقیقت رو بنویسه مثلا بنویسه چرا پزشکی مثل اوبولست باید خونه نشیم بشه جوان خامی مثل فروغ زمان مصطفی با جون مردم توی تو قعمل بازی کنه. گویه شما پروخصور اوبولست هم درس بوده. بله، دانشگاه صربون. مدتی پدرمو برای معاینه میبرم شواست. شناختی که من ازشون پیدا کردم جلوی حرف زور سرخم نمیکنه. شما از جبونی میشناسیدش تو این که سر پربادی داره اون موقع چطور؟ برای چی اومدید اینجا؟ واسه استنتاق من؟ یا قراره به اسم مساعده با من یه سری مطبب علیه و به نفع دوستتون برید یقین داشته باشیم برای جاسوسی اینجا نیستیم ما به شما حق میدیم نگران باشیم بالاخره بخشی از مسئولیت قربندسازی برای افراد توسط مطبوعات انجام میشه. واقعا عوض میخوام که باسته تکدر خاطرتون شده ما فقط چند تا عکس میگیریم و زیاد مزاحمتون نمیشه بگیرید آقا بگیرید من هم چند سالی فرانسه بودم عکاسی رو اونجا دوره دیدم نمیدونستم ایران عکاس باشی خالبم نرم اجازه میدیدی یه سوال خصوصی ازتون بپرسم؟ مم. میتونم ازتون بپرسم چرا برگشتی ایران؟ ایش اسم عاشقه داشتین تو ایران؟ نه. عاشقه من میهنمه. من ایرانی اگر اگرچه بیشتر از شما، کمتر از شما این سرزمین رو دوست ندارم. ما باقیش هم بردش گرفته نگو با گرفته آقا میدید چه بس دهن خودش رو اشنبن کی گرفتی بگو بیان بای با تو حافظا شیر کشونه خراب شده این پسره خوش کرد در گذاشت بیرون زنده اش نمیزد تو خبر شدنش فردا تو کل شهر بپیچه سلام علیکم سلام علیکم سلام نو چه غلامتم سیاتم <تصفح> چیز آقا باش کات تلو تیمیز شده ریدیف بفرمایید بفرو تارف ها کو بفهمو. من سفر وزارتونو همون قطی تاین کردم میبرین بالا. کجا؟ بالا بالا بالا. تا شیفگری دو. آره. هامرویشون کن. گندیو که زدی درست کن. نفله به تو چه دخلی در اسم من چیه؟ نشو وقتی با سمه ردخان چاقش را نقش را بکشی باید تو روزاد بس بز بده سلام آقا قلومم آقا عرض عدم آقا ولی نعمتید آقا چی شده؟ آقا, آقا شاروخ خانو پیدا کردیم آقا Hogyas? Aga, a patpak, Aga, rá. a pitjord, hogyim rá. a bizarro, hogyim la! Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, برای به دستو بردن دل چوب هراش به مال و مناله جدی به بخششی میکنی. چه خبره لحنت رو این آشقی آشقی نیش بخو تجارته قیرون به قیرونش حساب کتاب داره چند وقت دیگه پرویزخوا میشه پدر زن من نمست بایم بدهکار باشه نمست جلوم دلار راست بشه اگرم بخواه جلو ازدواج من و رو بگیره که بدهیاش سر به فلک میزنه و با سودش دیگه اون که خیلی غمگی میشم از این که مبینم یکی ادونه خاندان مصطفی برای به دست آوردن دل یک ندیمه اینطوری نقشه او ترخ میشین مخواهم برای بلاهت چون متاسفم شما هم گفتی محبان رو بگی من هم دارم بساش تر و نقشه این چیم این خواهی غیر از این بکنم شما بگی من چیکار هر راه تو عاشقی به چه دردی میخوره پسرم ای باب شکریه کجی رو Best three heinem, ع ma of S怎么ett? Felttö, بیا تو بیا بیا بیا پسرم اینجا بیار اینجا بیار بیار بیار اینجا بیار قشنان این با خایی چی شد جنسای ما آزاد شد جنساتم که آزاد نشده پرویز خوانم تو گمرا گیره ما تو دیدم داره برای تو شعر میشه اینو رو از بازار به صورت امانی گرفتم بابا ولی حالا که عجله نبود من کی... شما میشه از اینا پیشم رو اعتبار هر وقت جنستون آزاد شد فروخت این پولوش پس بگی حالا کتا بفروشم اینا رو کاغذارو لطفا مهره امزا کنی بفرسین تجارت کنی اینا چی هست رسیدو ضمانت باز بردخت نگران نباش به اندازه کافی فرصت داری گفتم که اهل نزول دادن و سود دادن هم نیستی حرفی نداره طرف بیشتر از اینا به من دیگ داره یه ماه، دو ماه، یه سالم طور بکشه اشکالی نمید چطوری زحماتتون رو جبران کنم؟ نظر جبران است Köszönöm széda, بسی چیزی بذارم جلوتون این دچو جوری باز میشه بفرمایید تو بگو دخترت بیاد ولی اینجوری بده به خدا چون بفرمایید تو یلی مون شبد بذارم جلوتون خودش بد بد میرسه بفرمایید بفرمایید خالص زیاد شده جفتک میندازیم خودمرکم بده خانو چی شده بخیر اون داداشه تو ویل کنم تو خیابونا که گاری هم بهش نمیبنده بارون با بچه بارون با خانم بی خود و بی جهت خلقتونو پشت رو میکنی هرکسی هر کسی از شکری خوده قلط رضا بکنی خوبه خوبه من کاره نمیخواد اینقدر زبون بریزی میخواد بدم تو که تو بچینن از چهچه چه بی خداییش این یعنی صاف نیست اینجوری جفنگ و لیچار بارم کنیم خبر مرگه اومده بودم دعوتتون کنم بیرس نمیخواد برو به محبانو بگو بیاد اینجا میخوام باش چند کلمه حرف بزنم باب زمینی گرم بزانتت مهربانو که از چی میکشم ازش تو میکشم تا منو به باد نده دست بردار نیست زنی که یه لیکارگو یه گل به سر درسته کرم نلوریزی تو خاک پندق دلپنده با تو جا خوب از گردت هیزم نکشیدن پریده سبسی فرنگ زدی آباره برمیکنی پیسش میجیم برمیکنی پیسش میجیم حرفا نه نه چیزی من شده؟ من دوستی میل تاقایی داشتا بهش میگفتم فریده برست کنم تو کوچن کاری بهت میبردم چرا گرده نمیخونی فریده واستا ببینم واستا بهروز اتفاقی افتاده تو را هرکی میپرستی در ست سال من خون زندگی من بردم به خودت دق میکنم و <تصفيق> چی میخوای از سر خون رو سزیگیه من؟ جوشی بی خود نزن فریده جو می میره خواسته منو بخوری. منو مار قاشیه برسه خونه رو سرمون خراب نکرده سلام خانم خیلی خوش اومدین چرا نمیه این داخل؟ توی این چند سال عمری که از خدا گرفتم هزار جور مشکل برام درست شد هزار نفر پاپیچم شدن من پاپیچه هزار نفر شدم همه جنس آدم و رنگی دیدم اما هیچ و خسیشکی درخواستی نکردم من ازد یه چیزی میخوام همین یه بار بابت این درخواست هر چیزی تا آخر عم بخوای برات انجام میدم من به دکاری هیچی نمیمونم خ من... نزن گوش کن نمیدونم چی بخورده این پسر دا جو چیکارش کردی که دلش اینجوری پیش تو گیره. این پسر دست رو هر دختری بذاره دو دستی تقدیمش میکنن. حالا که کار از کار گذشته تموم شده. ازت جواب میخوام آره یا نه منو مهرات مقصه و افثان و داستان نگو یک کلمه جواب میخوام آره یا نه من... آره یا نه نه آخه من اینجوری نیست که بگی نه و خلاص. با هر جوابی که میگی هزار تا اتفاق منتظرته اگه بگی نه نمک و هرومی هستی که زندگی تو سیاه میکنم اگه مهرات نه هر کسی دیگه نه نمیذارم آب خوش از گلود پایین بره ازدواج و فرزند و شوهرم باید فراموش کنیم یعنی تا زندن من نمیذارم ها اگه بگی آره نیای تو خونه عربابی و یه شبه میشی شاه دخت و بچه تم میشی نوهی مصطفی و زمان منو نشناخت خانم میشو که سلطنه من نبا با و ارعاب، نبا وعده و تطمین نظرم برنمیاد. من اجازه گرده. دادم حرف بزنی تا نگفتم دهنتو باز نمیکنی. از تو جو و کثافت درت وردم و فرستادمت تا که یه همچین روزی بربر بر تو چشمای من نگاه کنی و بگی نه. شما هرچی از من بخواید بهتون نه نمیگم. ولی این دختر، تو یا مقابل ما یا کنار ما. شکوه خانم، شاهزاده خانم، من شو، برو. چیزی که نابود بشه نموش نیدم. باید دوباره بگیرم تاره بی حد دلگی گرفت چه تا چرای بردی نه چیزه نیست. خوب میشه تردید دارم خوبم می بده نمیتونم تصمیم بگیرم چی اتفاق بعدی که میفته فکر میکنم مقصرش منه. من تصمیم که میگه فکر میکنم اشترا چرا همچه عرف میزنی؟ پیشکی از نتیجه تصمیمش مطمئن نیست تو بهترین تصمیمی که به مقدت میره سر رو میگیری ولی درست و رو زمان معلوم کنم از فری اون موقع که اومد خواستگاری من اینجوری نبود یخ نکنه این بچه سایلی آقا بود مومه، نجیب، مهربون آقاش آشنامون بود خیلی از بود و من تصمیم گرفتم زنش بشک آقا من موافقت بود. ولی بعدش چی شد؟ هیچ رفت دربار حکومتی شد گستاخ شد یا آدم دیگه شد دین و اموریشو داد دست شیطون حالا اصلا دیگه نمیشوست من هم دارم توانه تصمیم غلطی رو پس بودم که همها فکر کردم درست مرکه میگه چیز اونست وقتی داشتم از ایران میرفتم مهرا رو دوستش داشتم رفتم دنیا رو دیدم عوض شد. وقتی برگشتم دیدم اونم عوض شدم یه نه برام آقا بود نه آقا یه بچیچ حسی ندارم خلو یه یک چوری میزنه میگم خواهد حلقم بزنه بیرون چیزی نیست به بابا تو یه دوایی مرهمی داروی چیزی به من میده دارو سلام جناب پروفسور سلام دخترم دارو رو معمولاً به تناسوب بیماری میدم دارو یه شما داشتن کسی حالت خوش نیست چون کسی رو نداری ازش کمک بخوای محرمت باشه بهش تکیه کنی نفهمیدم منظورتون چیه؟ وقتی می‌بینی شاهی نداری تنها در خونه یکی رو بزن. می‌دونی؟ آدم‌ها معمولاً تو رو به خاطر خودشون میکنن. تنها کسی که تو رو به خاطر خودش می‌خواد، خیلی وقت از من رو برگردوند. اون منو نمیخواد منم خیلی وقت بهش قهرم. من با استعداد نیستم؟ اون وقت اون به همه امکانات داده به من چی اوی. هیچی اگه اون امکاناتو من داشتم وقت نمیذاشتم که شما <تصفيق> تو میخوای خدا بیاد نازتو بکشه ناز نکن یه بار فقط با محبت خدا رو صدا بکن ببین چه محبتها نصیبت میشه و الا مجبوری آویزون بندهاش بشی ازشون محبت گدایی کن شما همه مریضاتون رو با معایزه خوب میکنی ببخشید ولی من سرم داره میترکه به جای این حرفای یه دبای داروی چیزی به من بدین اینجا تا دلت بخواد دارو و هست اما بهت گفتم درد تو جای دیگه است. دبا یه نفر میخوره روش تاثیر میذاره بهتر میشه یه نفرم میخوره نه تنها روش تاثیر نداره بدتر هم میشه تاثیر دارو دست کسی دیگه است. اجازه بده میخوام من از توی این کتاب برای یه جمله بخونم میگه همیشه گرفتاری و مصیبت نصیب ملتهایی شود که در بینشان خدا از یادها رفته بشین اینجا برای این سرت یه دو, دو, دو بخندی ساده بشین روبرون تا من مثل آینه تماشا کنم به زرار زو یه گم کردم و تو چشمای مست تو پیدا کنم به جز تو چی میخوام از این زندگی دل من تو رو آرزو میکنه <تصفيق> کنارم به او رو ننگدوننظر تو باشی به من بالاخت رو میکنه. نموسون بگم او شدم بجز بره راهی نمونده برام حرف دلان رو و چشمام بگم